مصنوی معوی مولوی برنامه سوم، داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت از بهر تعصب بود شاه در جهودان ظالم ساز دشمن عیسی و نصرانی گداز عهد عیسی بود و نوبت آن او جان موسا او و موسا جان او شاه احول کرد در راه خدا آن دو دمساز خدایی را جدا گفت استاد احولی را کنده را رو برون آر از آن شیشه را گفت احول زان دو شیشه من کدام پیش تو آرم بکن شرح تمام گفت استاد آن دو شیشه نیست رو احولی بگذار و افزون بین مشو. گفت ای اصطا مرا تانه مزن. گفت اصطا زاندو یک را در شکن. چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم. مرد احول گردد از میلان و خشم. شیشه یک بود و به چشمش دو نمود. چون شکست و شیشه را دیگر نبود. خشم و شهوت مرد را احول کند. ز استقامت روح را مبدل کند چون غرز آمد هنر پوشیده شد صد هجاب از دل به سوی دیده شد چون دهت قاضی به دل رشوت قرار کی شناسد ظالم از مظلوم زار شاه از حقد جهودانه چنان گشت احول کل امان یارب امان صد هزاران مؤمن مظلوم کشت که هم دین موسا را و پشت. آموختن وزیر مکر پادشاه را او وزیر داشت گبر و اشوده کو براب از مکر بربستی گره گفت در سایان پناه جان کنند دین خود را از ملک پنهان کنند کمکشیشان را که کشتن سود نیست دین ندارد بوی مشک و اود نیست سر پنهان است اندر صد غلاف ظاهرش با توست و باطن برخلاف شاه گفتش پس بگو تدبیر چیست چاره آن مکر و آن تزویر چیست تا نماند در جهان نسرانیه نی هویدادین و نی پنهانیه گفت ای شه، گوش و دستم را ببر بینیم بشکاف و لب در حکم مر. بعد از آن در زیر دار آور مرا تا بخواهد یک شفاعتگر مرا بر منادیگاه کن این کار تو بر سر راه که باشد چهارسو، سو آنگه هم از خود بران تا شهر دور تا دراندازم در ایشان شر و شور تلبیس وزیر با نسارا پس بگویم من به سر نصرانی‌ام ای خدای رازدان میدانیم شاه واقف گشت از ایمان من و تعصب کرد قصد جان من خواستم تا دین ز بنهان پنهان کنم آنکه دین اوست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 او جهودانه بکردی پاورم، بهره عیسی جان سپارم سرد هم صد هزاران منتش من بر خود هم. جان دریغم نیست از عیسی لیک، واقفم بر علم دینش نیک نیک حیف می آمد مرا کان دین پاک در میان جاهلان گردد هلاک شکر ای را و ایسا را که ما، گشته مان کیش حق را رهنما از جهود و از جهودی رستم، تا به زن میان را بستم. دور دور ایسی است ای مردمان، بشنوید اسرار کیش او جان، کرد با وی شاه آن کاری که گفت، خلق حیران ماند از آن مکر نهفت، راند او را جانب نسرانیان کرد در دعوت شروع او بعد آن. قبول کردن نسارا مکر را صد هزاران مرد ترسا سوی او اندک اندک جام شد در کوی او او بیان می کرد با ایشان براز سر انگلیون و زنار و نماز او به ظاهر احکام بود. لیک در باطن سفیر و دام بود. بهر این بعض صحابه از رسول ملتمس بودند مکر نفس قول. کوچی آمیزد ز اقراض نهان در عبادت ها و در اخلاص جان. فضل طاعت را نجستندی از او، عیب ظاهر را بجستندی که کو؟ مو مو و زره زره مکر نفس می شناسیدند چون گل از کرفس. مو شکافان صحابه همدران بعض ایشان خیره گشتندی جان مطابقت نصارا وزیر را دل بدو دادند در سایان تمام خود چه باشد قوت تقلید عام در درون سینه مهرش کاشتند نایب ایسیش می پنداشتند او بسر در یک چشم لعین ای خدا فریاد رس نیم صد هزاران دام و دانه ای خدا ما چمرغان حریس بینوا دم بدم ما بسته دام نویم هر یکی گرباز و سیمرغ شویم می رهانی هر دمی ما را و باز سوی دام می رویم ای بی نیاز. ما در این انبار گندم می کنیم گندم جمع آمده گم می کنیم می اندیش ای ماخر ما بهوش کین خلل در گندم است از مکر موش موش تا انبار ما زده است و از انبار ما ویران شده است اوله جان دفع شر موش کن وانگهان در جمع گندم جوش کن بشنو از اخبار آن صدر و صدور لا سلاته تم الا بل گر گرنموشی دوست در انبار ماست گندم اعمال چهل ساله کجاست ریزه ریزه صدق هر روزه چرا جمع ناید در این انبار ما بس ستاره آتش از آهن جهید وان دل سوزیده پز و کشید لیک در ظلمت یکی دزدی نهان می نهد انگشت بر استارگان می کشد استارگان را یک به یک تا که نفروزد چراغی از فلک گر هزاران دام باشد در قدم چون تو با مایی نباشد هیچ غم چون انایاتت بود با ما مقیم کی بود بیمی از آن دزد لعیم هر شب از دامتن تن ارواح را میرهانی میکنی الواه را میرهند روا هر شب زین قفس فارغان نی حاکم و محکوم کس شب زندان بی خبر زندانیان شب دولت بی خبر سلطانیان نی غم و اندیشه سود و زیان نی خیال این فلان و آن حال عارف این بود، بی خواب هم، گفت هم همرقودون زین مرم. خفته از احوال دنیا روز و شب، چون قلم در پنجه تقلیب رب، آنکه او پنجه نبیند در رقم، فیل پندارد به جنبش از قلم. شمه زین حال عارف بانمود، عقل را هم خواب حسی در ربود. رفته در صحرای بیچون جانشان، روحشان آسوده و ابدانشان و سفیر باز دامندر کشی، جمله را در داد و در دابر کشی، چون که نور سابهدم سربرزند کرکس زرین گردون پرزند، فالق الاسباه وار جمله را در صورت آرد، زاندیار های منبسط را تن کند هر تنی را باز آبستن کند عصب جانها را کند آریز زین سر ان و اخل موت است این لیک بهره آن که روز آیند باز برنهد بر پایشان بند دراز تا که روزش واکشت زان مرغزار و از چراگاه آردش در زیر بار کاش چون اصحاب کهف این روح را حفظ کردی یا چو کشتی نوح را تا از این طوفان بیداری و هوش وارهیدی این زمیر و چشم و گوش ای بس اصحاب کهفن در جهان پهلوی تو پیش تو هستین زمان. یار با او غار با او در سرود. مار بر چشم است و برگوشد. چه سود. دیدن خلیفه لیلی را گفت لیلی را خلیفه کان تویی، تو مجنون شد پریشان و غوی، از دگر خوبان تو افزون نیستی گفت خاموش چون تو مجنون نیستی هر که بدار است او در خواب تر، هست بیداریش از خوابش بتر چون به حق بیدار نبود جان ما هست بیداری چودربندان ما جان همه روز از لگت کوب خیال و زیان و سود و از خوف زبال نی صفا میماندش نی لطف و فر نی بسوی آسمان راه سفر خفته آن باشد که او از هر خیال دارد امید و کند با او مقال دیو را چون هور بیند او خواب پس ز شهوت ریزد او بادی و آب چون که تخم نسل را در شوره ریخت او بخیش آمد خیال از وای گریخت زعف سر بیند از آن و تنپلید آه از آن نقش پدید ناپدید مرغ بر بالا و زیر آن سایش میدود بر خاک پران پر وش ابله سیاد آن سایه شود میدود چندان که بیمایه شود بی خبر کن عکس آن مرغ هواست خبر که اصل آن سایه کجاست تیر اندازد به سوی سایه او ترکشش خالی شود از جستجو ترکش عمرش توهی شد عمر رفت از دیدن در شکار سایه تفت سایه یزدان چو باشد دایش وارهاند از خیال و سایش سایه یزدان بود بنده خدا مرده او این عالم و زنده خدا دامن او گیر زوتر بیگمان، گمان تا رهی در دامن آخر زمان کیفم زل نقش اولیاست، است کو دلیل نور خورشید خداست اندرین وادی مراو این دلیل لا احب بل چون خلیل روز سایه آفتاب رابیاب دامن شه شمس تبریزی بتاب تاب ره جانب این سور و از زیاالحق حسام الدین بپارس ورحسد گیرد تو را در ره گلو در حسد ابلیس را باشد گلو کوز آدم ننگ دارد از حسد با سعادت جنگ دارد از حسد اقبای زین صعب در راه نیست ای خنک آن کش حسد همراه نیست این جسد خانه حسد آمد بدن از حسد آلوده باشد خاندان گر جسد خانه حسد باشد ولیک آن جسد را پاک کرد الله نیک تهرا بیان پاکی است گنج نور است ارتلس خاکی است چون کنی بر بی حسد مکر و حسد زن حسد دل را سیاهی ها رسد خاک شو مردان حق را زیر پا خاک بر سر کن حسد را همچما بیان حسد آن وزیر آن وزیرک از حسد بودش نجات تا به باطل گوش و بینی باد داد بر امید آن که از نیش حسد زهر او در جان مسکینان رسد هر کسی که از حسد بینی کند خیشتن به گوش و بی بینی کند بینی آن باشد که او بوی برد بوی او را جانب کوی برد هر که بویش نیست بی بینی بود بوی آن بوی است کان دینی بود چون که بوی برد و شکر آن نکرد کفر نیمت آمد و بینیش خرد شاکر کن مر شاکران را بنده باش پیش ایشان مرده شو پاینده باش چون وزیر از رهزنی مایه مساز خلق را تو بر میاور از نماز ناسه دین گشته آن کافر وزیر کرده او از ما کرد در لوزین سیر فهم کردن حاذقان نصارا مکر وزیر را هر که صاحب ذوق بود از گفت او لذت می دید و تلخی جفت او نقطه ها می گفت او آمیخته در جلاب قند زهر ریخته ظاهرش می گفت در رح شو چاو از اثر می گفت جان را سوس چاو ظاهر نقره گرسپی دست و ناو دست و جامع می سیه گردد از او آتش هر سرخ روی است از شرر توز فعل او سیاه کاری نگر برق اگر نور نماید در نظر لیک هست از خاصیت دزده بسر هر که جز آگاه و صاحب زاق بود گفت او در گردن او تاق بود مدت شش سال در هجران شاه شد وزیر اتباع ایسا را پناه دینودل دل را کلبدو بسپورد خلق پیش امر و حکم او میمرد خلق پیام شاه بنهان با وزیر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 بیان دوازده سپت از نسارا قوم را بدندر دار و گیر حاکمانشان ده امیر و دو امیر هر فریق مر امیر را تبع بندگشته میر خود را از این ده و این دو امیر و قومشان گشته بند آن وزیر بدنشان اعتماد جمله بر گفتار او اقتدای جمله بر رفتار او پیش او در وقت و ساعت هر امیر جان بدادی گر و گفتی بمیر تخلیط وزیر در احکام انجیل ساخت توماری به نام هر یکی نقش هر تومار دیگر مسلکی حکمهای هر یکی نوعی این خلاف آن ز پایان تا بسر در یکی راه ریاضت را وجو رکن توبه کرده و شرط رجو در یکی گفته ریاضت سود نیست ان در این ره مخلص جز جود نیست. در یکی گفته که جو و جود تو شرک باشد از تو با معبود تو. جز توکل جز که تسلیم تمام در غم و راحت همه مکرست و دام. در یکی گفته که واجب خدمت است ورنه اندیشه توکل تهمت است. در یکی گفته که امر و نعی هاست، بهره کردن نیست، شرح عجز ماست. تا که عجز خود ببینیم ایمن قدرت حق را بدانیم آن زمان. در یکی گفته که عجز خود مبین، کفر نعمت کردن استان، عجز، هین. قدرت خود بین که این قدرت از اوست، قدرت تو نعمت اودان که هوست، در یکی گفته کزین دو برگذر بوت بوت هرچه بگنجد در نظر در یکی گفته مکش این شمع را کی نظر چون شمع آمد جمع را از نظر چون بگذری و از خیال کشته باشی نیم شب شمع وصال در یکی گفته بکش با که مدار تا عوض بینی نظر را صد هزار که کشتن شمع جا و نفزون شود، لیلیت از صبر تو مجنون شود. ترک دنیا هر که کرد از زهد خیش، بیش آید پیش او دنیا و پیش. در یکی گفته که آن داد حق، بر تو شیرین کرد در ایجاد حق. بر تو آسان کرد و خوش آن را بگیر، خیشتن را در میفگن در زهیر. در یکی گفته که بگذار آن خط کان قبول طبع تو رد دست و بد، راه های مختلف آسان شده است، هر یکی را ملت چون جان شده است. گر میسر کردن حق ره بودی، هر جهود و گبر از او آگه بودی، در یکی گفته میسر آن بود که حیات دل غذای جان بود، هرچه ذوق تب باشد چون گذشت بر نیارد همچه شوره ری و کشت. جزب و شیمانی نباشد ری او. جز خسارت پیش نارد بی او. آن میسر نبودند در عاقبت نام او باشد موثر عاقبت تو موثر از میسر بازدان. عاقبت بنگر جمال این و آن. در یکی گفت که استاد طلب عاقبت بینی نیابی در حسب عاقبت دیدند هر گون ملت لاجرم گشتند در سیر زلته. عاقبت دیدن نباشد دست باف ور نکی بودی زدینها دین ها اختلاف در یکی گفت که استاد هم توی، زان که استاد را شناسا هم تویی مرد باشو سخرای مردان مشو رو سر خود گیرو سرگردان مشو در یکی گفته که این جمله یکی است هر که او دو بینت احول مردک است در یکی گفته که صد یک چون بود این کی اندیشد مگر مجنون بود هر یکی قولی است ضد همدگر. چون یکی باشد یکی زهر و شکر تا زهرو زهر و از شکر در نگذری کی و از گلزار وحدت بربری این نمت وین نو ده ما و مارو دو برنوشتان دین عیسی را ادو